بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب المصاقات كتاب المصاقات المصاقات إنك صاحب باغ مياد شخصي رو ميگره كي إن نخلا رو قابياري كنه وعزشون چكار كنه؟ موازبت كنه، الساقية ديگه مصاقات سيغي مفاعله هست ميگه والمصاقاتو جائزتون في النخل والكرم خاصة مصاقات جائزه هست در نخل وأنقور فقط این نظریه شوافه چون بقیه بقیه فقها ها مساقات و داود ظاهری که خود فقط در نخلش جایز میدونه امام مالک در اون چیزهای جائزش میدونه که اصل ثابتی دارد درختان یعنی مثل انار و انگور و زیتون و انجیر و چیزای مختلف و البته در غیر درختان در چیزای دیگه هم زمانی جایزش میدونه که میگه اون صاحبه کشاورزیش آجیز باشه. حنابل هم جایز میدونه مساقاتو در هر سمره که خورده میشه اما احناف از همه وسيطر هستن حتى در بادم جالو انتزهن جائزش مدونند انت خب بس ما ميگه مصاقات جائز هست در نخل و در انغول فقط وهي هی ان يدفع الرجل نخله الى عاملين الان داره تعريفش میکنه ليعمل فيها مدتا معلومة اقلها ان يثمر النخل فيها ماله ميگه مصاقات اینه كشخص نخلش رو بده بيه کارگری که در اون نخلا کار بکنه در یک مدت معلوم ولی اون مدت به اندازه باشه که در اون مدت نخلا بسمر برسد چون چیزی گیرش بیاد دیگه نه پس در مساقات مدت معلوم بشه ولی مدت به اندازه باشه که در اون مدت سمر نخل بده بجوز این معلوم من, من فمریتی ها در مقابل چی؟ در مقابل قسمتی معلوم از سمره آقا شما بیا این باغ من رو این نخلا رو این انگورا رو چون شما این این دوتا رو جاز میدونند آبیاری کن ازشون محافظت کن در مقابل یک دوم سمر در مقابل یک سوم سمر آه ما معلوم باعت باشي باعت كي باشي؟ معلوم باشي يستويان فيه ميگه درون سمر مصافي باشن جائزه مثل يك دوفو يك دوفو سمر مال من يك دوفو مش مال شما او يتفاضلن يا يكي بجيش ببره. بباره موريدينة داره مثلا صاحب مال بگاغا يك سو مش مال شما باقي من دش مال من يا یک سفومش مال من باقی من ماله پس چه مساوی باشه اون جزء معلوم چه تفاضل باشه موردی نداره ولی باید معلوم باشه ولی باید چه باشه؟ مل. معلوم باشه ولا خیار لی واحد من هما بعد تمام العقد بعد از اینکه عقد بس شد هیچی که از اون دو دگه اختیاری ندارد. ولا یابو بالموت و با موت هم این مساقات باطل نمیشه یعنی تا اون ثمرها براسند آه این آقا کار میکنه و بعدش تموم میشه که مده تموم میشه و كل عمل نو ادی الى کمال سمرتی مستحق فیه بغیر شرط خوب در کار کردن چی کار ایبرو اهده این آغا عامل هست میگه هر عملی که منجر به کامل بودن سمره بشه مستحق هست درش بدون این که شرط بکنن مثلا در موقع قرار داد اصلا اگه شرط نکرده باشن اون کاری رو که مرتبط به سمره هست رو خود بخود اون وظیفش بر که مثلا سنپاشی فرزن میگیم اگر میوه رو نزنه خراب میشه ولی اگر نه به خود درخت برمیگرده رم... اون جوها رو درست کردن و کارای دیگه کردن اون بر اهده عامل نیست پس میگه هر عملی که منجره به کام، کامل شدن ثمره بشه خود به خود انجامش میده بدون شرط ولا یلزم به شرطی الا ما مستزاد مستضاد و ثمرتی دون غیری و لازمی نمیشه با شرط مگر انچه که سماره اضافه بشه نه کارهای دیگر نه کارهای دیگر پس وظائفی رو که عامل انجام میده اگر کاری باشه که ربطی به مثلا دیوارهای باغ و بستن مثلا این دیگه بر وظیفه عامل نیست ولا يجوز ان يشترط عمل ادمي معه في المساقات والقراض ميگه جائيز نيست که شرط بگذاره عمل ادمي رو همراه خودش در مساقات و در مضاربه ولي در زیر پاورقي در مختصر مزني آورده ميگه ولا بحث انشتر المساقي الرب النخل غير مانن يعملون مع ايراضي ندارد که اون شخصی که ابياري میکنه شرط بگذاره بر صاحب الناخل كأفرادي غلاماني باش شكار كنند كار بكنند ويجوز للعامل في المساقات أن يساقيا عليها جائزة براية عامل در مساقات كي يك أبيار ديقي برش بگيره مهم ينك بايد أن در اخطاء أبو خلالنا نعم ولا يجوز في القرازي ان يقارز عليه. اما در مزاربه اینجوری نبود در مزاربه شخص نمیتونست بیاد یکی دیگه رو بگه آقا بیا من تو رو پول پولا رو میدم پولا در حالی که مالا کسی دیگر هستن بیاروشن کار کن اگر این کار رو هم کرد باطل بود چی بود؟ باطل بود و در کتب بزرگ شن میارن اون موقع سود برمیگشت بکی به صاحب مالی پس برای عامل در مساقط جایز که یکی دیگر بگیره برای اینکه آب بده ها مساقی باشه ولی در مزاره بجایز نیست که یکی دیگر رو بگیره و پول و کار بگیره و واذا دفع الرجل أرضا بيضاء الى رجل ليزرعها بالنصف او ثلث فهي المخابره التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم میگه زمانی که شخص یک زمینی خالی رو زمینی صاف رو بدون چیز رو به یک شخصی داد که تا اونو بکاره در مقابل یک دومه اون سمرش یا یک سومش این مخابره هست که پیغمبر از اون چکار کرده صلی الله علیه وسلم نه کرده است. البته مخابره اینه که بزر بر آمل باشه بر کی باشه؟ مزارع هم بیش میگن ولی فرقش اینه که در مخابره بازر بر کارگره بر از صاحب زمین نیست ولی هر دوتا چه مزارعه چه مخابره در نزد شوافه ممنوع هستن و بعضی از شاف... شوافق اینو جائز دلستن مثل احناف که مزارعه رو جائز می دولند بعضی از شوافق اینو چکار کار ولی خود امام شافی امام ماوردی و دیگرانی اینو جایز نمیتونند اینو در کتاب حاوی اونجا میاره افرادی رو که جائزش دونسان و افرادی رو که جائزش نمیتونسان یعنی در خود نزد بزرگان شوافه اختلاف هست. بعضی جائزش میتونند خب، فانساقه الا نخل تحته بیاضون الا ان به نصف جازه تبعاً لِالمساقات میگه اگر شخصو گفت که مساقی باشه، یعنی رو آبیاری کنه و ازشون محافظت بکنه، بخاطر نخل اون نخلات جای خالی بود، زیر نخلاتی بود؟ اگر اینجا اومد مادو گفت که به نصف رو روش مزارعه بکن. میگه اینجا ایراد نداره چون اینجا در تبعه همون چیه؟ مساقاته مزارعه اینجا اصل نیست تبعه هست چه هست؟ هست پس اگر زمین خالی بود نخل نداشت انگور نداشت جایز نیست مزارعه ولی اگر نخل داشت زیرشون خالی بود اینجا اوبادو گفت مزارعه بکن اینجا میگند موردی نداره فان زرعه بغير شرط اگر خود اون مساقی اومد بدون شرط اومد و مزارع کشت کان کمنزرع ا ارض غیری خصبا مانند اینیه که شخصی بیاد زمین کسی دیگر رو از روی غصب بکاره چون در مساقات بدون شرط بیاد بکاره معنیش اینه پس مساقات همین بود ساقات همین بود که گفتیم در نخل و انگور جایزش می دونست. مذهب خودمون احناف وسیع ترین مذهب در این مورد روی انجیر و انگور و کاشتنی های دیگه جایزش می دونه مزارعه و مخابره در مذهب شوافع جایز نیست ولی بعضی از بزرگان شافعیه مزارعه رو چکار کرده اند جائز دونستند